بیان خسارت وزیر در این مکر همچو شه نادان و قافل بود وزیر پنج میزد با قدیم ناگزیر با چنان قادر خدایی که از عدم سچو عالم هست گرداند به دم سچو عالم در نظر پیدا کند چون که چشمت را به خود بینا کند گر جهان پیشت بزرگ و بیبو نیست، پیش قدرت ذره میدان که نیست، این جهان خود حبس جانهای شماست، این رویدان سوک صحرای شماست، این جهان محدود آن خود بیهد است، نقش و صورت پیش آن معنی صد است، صد هزاران نیزه فرعون را در شکست از موسی با یک عصا صد هزاران طب جاری نوس بود پیش عیسی و دمش افسوس بود صد هزاران دفتر اشعار بود پیش حرف امی آنار بود با چنین قالب خداوندی کسی، چون نمیرد گر نباشد او خسی، بس دلت چون کوه را انگیخت او، مرق زیرک با دو پا آویخت او، فهم و خاطر تیز کردن نیست راه، جز شکسته می نگیرد فضل شاه، ای بسا گنجاگهان کنج کاو کن خیال اندیش را شد ریش گاو، گاو که و تا تو ریش او شوی، خواب چه و تا هشیش او شوی، چون زنی از کار بد شد روی زرد، مسخ کرد او را خدا و زهره کرد، اورتی را زهر کردن مسخ بود، خاک و گل گشتن نمسخ استی انود، روح می سوی چرخه برین، سوی آب و گل شدی در اسفلین، خیشتن را مسخ کردی زین سفول، زن وجودی که بدان رشک عقول پس ببین که این مسخ کردن چون بود، پیش آن مسخین به قایت دون بود، از به همت سوی اختر تاختی، آدم مسجود را نشناختی، آخر آدم زاده ای ای ناخلف، چند پنداری تو پستی را شرف، چند گوی من بگیرم عالمی این جهان را پر کنم از خود همی، گرد جهان پر برف گردد سر به سر تا به خرب بگدازدش با یک نظر. وزر او و صد وزیر و صد هزار نیست گرداند خدا از یک شرار. عین آن تخیل را حکمت کند عین آن زهراب را شربت کند. آن گمان را سازد یقین، مرها رویاند از اسباب چین، پرورد در آتش ابراهیم را، ایمنی روح سازد بیم را، از سبب سوزیش من سودائیم، در خیالاتش چسوفستائیم،